الرحمن و رحيم المطلب الثاني المندوب مطلب دوم چیه مندوب مستحب بیسنادت به لغتان الدعاء الى الامر المهم ندب معنای لغوییش یعنی فراخاندن به کار مهم دعوت دادن به کار مهم و المندوب المدعو الیه مندوبون کسی رو میگاد که چه شده فراخوندن وفي الاصطلاح هو ما طلب الشاعر فعله بن غير الزام هو ما طلب الشاعر فعله بن غير الزام بحيث يمدح فاعله يثاب ولا يذم تاركه ولا يعاقب تعريف اصطلاحي مستحب آنس اس ك طلب كرده باش شاعر انجام آن را بدون الزام مستحب آنس اس ك طلب كرده باش شاعر بدون الزام به گونه ای ما دح دهنده و پاداش گیرش می آید اما تارکش مذمت نمی شود و عقوبت داده نمی شود و يدل على کون الفعل مندوبا صيغه الطلبي اذا اقترن بها ما يدل على اراده الندب للالزام سواء كانت هذه القرينه نصا او غیره خب در شریعت در نصوص از کجا از کجا پی ببریم که آقا این من مستحب هست یا نیست بيگه و يدل على کون المندوبي انا كون من دوبن سیغه تلب دلالت می بر مستحب بودن فعل سیغه طلب سیغه طلب بر مستحب بودن دلالت میکند. به چه شکل؟ زمانی که همراه باشد با سیغه تلب قرینهی که به ما بگوید اینجا منظور مستحب بودن است اون قرینه ما را بفهمد که اینجا منظور از این امر منظور از این طلب آقا فرض نیست بلکه چیه؟ مستحبه. اون قرینه سواء اون کان تازه القرینه نستن او غیر حالا برابره که این قرینه نس باشه یا قرینه دیگه باشه میبینیم که در شریعت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به چیزی دستور داده است و الگاهی ترکش کرده است پس میبریم که این کار فرض نیست اگر فرض میبود ترکش نمی, نمی کرد پس اینجا با سیغه طلب اومده آقا این کار رو بکنید ولی قرینه دارید که به ما میگه این قرینه که اینجا منظور از این طلب مستحب. الزام نیست بلکه مستحب واجب نیست بلکه چیه مستحب. پس میگه دلالت میکند بر مستحب بودن فعل سیغه طلب همون طلب کردن چه زمان؟ زمانی که با این طلب قرینه همراه باشد که دلالت بر این بکند که آقا منظور مستحب بود است نه الزام حالا فرقی نمی کند این قرینه چه نسی باشد که در شریعت وارد شده است یا حدیثی دیگر آیه دیگر یا نه قرینه دیگر حالا مثال شو بیاره فقوله تعالی یا ایوالذین آمنو اذا تداینتم این آیه کریمه میگه که ای کسانی که ایمان آورده ایت زمانی که معامله دینی زدید، آه دین دادید، دین گرفتید، و جو مدکی اینو بنویسید، بگلاید هذا این ها، طلب، على الالزام الزام. بقرينة ما ورد في سياق الآية وهو قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اعتم من أمانته فهذا النص يدل على أن طلب الكتابة الدين إنما يراد به الندر لاللسو ببنى در آية وما دي دو اسلو حشتادو دو زماني كشمو الديني موامل كارديد ناقدين مواملنا كارديد أولو بيسيد وما دي باسيغي أمر وما دا اینو میگن طلب. وصیقه چ اومده؟ دستور اومده. آقا بنویسیدش. ولی در آیه دیگر قرینه اومده است که میگه فئن امنا بعضكم بعض فليؤد من عمانته. اگر بعضی از شما بعضی دیگر رو برش در عمل بود، امینش دونست. آ؟ بر این باور بود که این آقا انسان درستیه. اینجا میگه اونی که امانتو گرفته امانتشو برگردوده این قرینه به ما میگه که پس نوشتن دین درسته که با تیغه طلب اومده ولی این قرینه به ما میگه که آقا نوشتن بهتر است بستحب است اما واجب نیست الزام نیست, نیست. بالی فهاز نس میگه این نص یعنی دوفوبی اون نس اول نه اون نس اول طلبه این ناس دوفو بی یا دلو طلب کتابت دین دلالت بر این میکنه که طلب کردن نوشتن دین انما به ندم لل منظور مستحب است نه الزام و واجب متواجد شدید؟ دید؟ بیستو یک والمندوبو يسمه ایضا از سنه اسمهای دیگه مندوبو داره مطرح میکنه. بدیگه مندوب همچنین نامیده میشه سنت میگن این عمل سنت است یعنی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و اینو انجام داده ولی گاهی اینو چکار کرده و النافله نافله هم بش میگن والمستحب مستحب هم بش میگن والتطوع تطوع هم در کتاب عربی بش میگن والاحسان احسان هم در کتاب عربی بش میگن والفضيله فضیلت هم بش میگن و کلها الفاظ متقاربه المعنى تشیرو الى معنى المندوب و كونه راجح الفیلی من غیر الالزام بیگه تمام این الفاظ قریب المعنا هستند معانی نزدیکی به هم دیگر دارند و تمام این الفاظ اشاره به معنای چی میکند؟ مندوب بیکند و مندوب این است که انجامش راجح است بدون الزام و هو کونه راجح الفی من دوم اینه که فلش برتر است بهتر است ارجح هست بدون الزام پس تا اینجا ای کار ما خوندیم انشالله جلسه بعدی مطلب ثالث یعنی حرام یا محرم و باهم خواه؟ با هم خواهیم خواهیم به اذن الله تعالی